فصل نهم نه این صحیح نیست یک بار دیگر هم او را دیدم مانط این بار جعت گفتگو با او را نداشتم هوادس با چنان سرعتی پیش میرفت که دیگر از من کاری بر هرچه هر چه سعی میکردم با استاد رابطهای برقرار کنم اجازه نمیداد حتی پای تلفن هم مقطع و مختصر جواب میداد و گوشی تلفن را زمین میگذاشت. این طرز رفتار او جدا برای من موهن و تحمل نپذیر بود. هر وقت که گوشی تلفن را زمین میگذاشت مثل این بود که مته به جگر من میگذارند و میگاوند. تمام روز منتظرش بودم. پهلوی خودم خیال میکردم که خبری از او خواهد رسید. پیغامی به من خواهد داد. و مرا به خانه خودش دعوت خواهد کرد حتی یک بار لابه کنن از او خواستم که در محل دیگری در خانه یکی از دوستان من بیاید تا آنجا او را ببینم قبول نکرد هر آن حتی در ساعتی که یقین داشتم و بر حسب تجربه می دانستم که در محلی مشغول انجام کاری است چشبه بودم پهلوی خودم می گفتم که به من احتیاج دارد و مرا احظار خواهد کرد خیال می کردم کاری که هرگز نکرده است، خواهد کرد و ناگهان بدون علائم قبلی به خانه من خواهد آمد هر وقت به خانه می آمدم با وجودی که میدانستم اگر نامهی برای من رسیده باشد فضل سلطان روی میز اتاقم خواهد گذاشت هم وقتی اثری از او نمیدیدم از بابا و از مادرم و یا از اولین کسی که باش برخورد می کردم می پرسیدم که آیا کسی به سراغ من نگامده است. کسی نامهی برای من نیاورده است حتی نامه هایی که از خارج برایم می رسید با وجودی که تمره خارجه داشت باز می کردم با اینکه اینکه اوست و وقتی خط او را نمی دیدم آنها را رو روی میز می و گاهی چندین روز دست نخورده باقی می ماند یک روز فرهاد میرزا را در خیابان دیدم او را از روی طرحی که استاد ساخته بود و از سبیلش شناختم جلوشو گرفتم و از او احوال استاد را پرسیدم خشك و اعتنا جواب داد من شما را نمیشناسم گفتم من شما را میشناسم شما فرهاد میرزا هستید اسمتان هم محسن کمال است گفت اشتباه میکنید خانم من فرهاد میرزا نیستم گفتم من از شما چیزی نمیخوام. میخواهم بدانم آقا رجب را مرخص کردن یا نه گفت خانم اشتباه میکنید من نه شما را میشناسم و نه آقا رجب را ازش بیزار شدم نگاه تحقی را میزی به او انداختم و بدون یک کلمه آسخایی و یا خداحافظی روبرگرداندم و رفتم پرلوی خودم گفتم پسر ی ترسوم من نجاتش دادم و حالا واهمه دارد از اینکه با من حرف بزند یک ماه در این حال انتظار روزگار سیاهی گذشت در تمام این مدت بوم شومی چنگال های تیزش را در دل من فرو کرده بود و من هرچه میخواستم این کابوس مهیب را از خود برانم چنگال های خونینش را امیختر در دل من فرو میبرد دو سه بار تلفن کردم. روزی یک نفر ناشناس جواب داد و گفت استاد تشریف ندارند. دفعات دیگر به محض اینکه طرف صدای مرا میشنید گوشی را سر جایش میگذاشت. بدبختی می دانید چه بود؟ همین که نمی این رفتار غیر انسانی او را با خودم توجیه کنم. آیا از من رنجیده بود؟ درست گفتگوی خود را در آخرین ملاقات با او از خاطرم گذراندم گفته بود. فرنگیس عزیز. من از تو نجات فراد میرزا را میخواهم به هر قیمتی شده باید نجاتش بدهی و الا او را خواهند کشت. او کسی نیست که چیزی بگوید، زچکاشش خواهند کرد. پرسیدم به هر قیمتی، جوابی نداد. واضحتر گفتم. حتی اگر به این قیمت تمام شود که من تمام عمر خود را به او بفروشم. گفته بود نه به این گرانی. برای نجات دوستش حاضر بود که مرا پیش رئیس شهربانی بفرستد. اما حالا که خودش در خطر افتاده بود حالا که جانش به مویی بند بود دیگر نمیخواست مرا ببیند چه فکر میکرد؟ فکر میکرد ممکن است من خودم را محض خاطر را او بفروشم یا از فرط ترس جان خود را در آغوش رئیس نظمیه بیندازم اگر این تابلو را با این چشم نساخته بود چون این فکر میکردم و راحت میشدم دنبالی یک زندگی راحت و مرفه می رفتم. خود را در ویلانگاه زندگی عادی میانداختم و دیگر این زندگی امروز را نمی کشیدم که سالهای بعد زندگی کردم صبح دیر وقت از خواب بلند می شدم چای و شیر و تخم مرغ و کره و مربا و لیکور را در تخت خواب می خوردم. دو سه ساعت به شست و شو و خود می پرداختم زهنه نهار را در یکی از هتل‌های در درجه اول پاریس و یا در مهمانی های بزرگان می خوردیم. بعد از زور اسب تاخت می کردم. سوار و با سرعت 80 تا 90 کیلومتر در ساعت با هم خود کورس می‌گذاشتم و یا در مغازه خرید می کردم. شب باز موقع آرایش بود و مهمانی و پذیرایی و خوشگذرانی و قمار و شراب و قیافه های خندان و فراک و لباس سیبا. و ولگوی و ولنگاری منی هدف زندگی همین بود شوهرداری می کردم تا اینکه یک روز در یکی از روزنماهایی که از ایران میآمد خبر مرگش را خواندم و چندی بعد در یک مجله آلمانی این آخرین تصویر استاد با این چشم های لعنتی چاپ شد از آن روز دیگر همین است که می بینید بگذارید آخرش را بگویم و تمام کنم شما عجب اوسلهی دارید. اگر همینطور ساکت بنشینید من یک کتاب میتوانم حرف بزنم. پس از یک ماه دیگر تاقت نیاوردم. بار دیگر سرتیب را شب به خانم دعوت کردم. در طی این یک ماه اغلب به من تلفن می‌کرد. وقتی خانه نبودم از مادرم سراغ مرا می‌گرفت. یکی دو بار بدون اطلاع قبلی بعد از ظهر به خانه ما آمد. می نشست و چایی میخورد و سیگاری میکشید و اشارهای به تقاضایش میکرد و میرفت. آن شب همین که فرصت به دست آوردم پرسیدم. خب هنوز هم مشغول خدمتگذاری هستید؟ پرسید چطور؟ گفتم هنوز هم مردم رو میگیرید؟ گفت نه دیگر نمیگیریم. لانه ای فساد را پیدا کردیم. پرسیدم کجا بود؟ گفت یکیش خانه استاد نقاش بود. آرام پرسیدم؟ کدام استاد نقاش؟ گفت خودتان را به نفهمی نزنید. همین استاد، صاحب همین تابلو. شما او را خوب می از شما هم گزارش رسیده است. شما هم در خانه او آمد و شد داشته اید. گفتم من الان یک ماه هست که آنجا نرفتم. سابقا میرفتم که پورتره مرا بکشد. گفت پس چطور شد که ما در صورت شما را پیدا نکردیم؟ گفتم برای اینکه من دو سه بار رفتم و چون از کارهایش خوشم نیامد حوصلم سر رفت و دیگر نرفتم ناتمام ماند مگر خانهاش رو تفتیش کردید گفت خانهاش را تفتیش کردیم و هرچه میخواستیم پیدا کردیم مختصر اینکه سر و کلاف به دستمان آمد خودش را هم گرفتیم مرتی که یه مسور عجیبی است هنوز یک کلمه حرف ازش نتوانستیم درآوریم نمیخواهم به شما بگویم که چه حالی به من دست داد همینقدر بدانید که وقتی صحبت به اینجا کشید با وجودی که خود را برای بدترین خبرها آماده کرده بودم دیگر خود را باختم رنگم پرید و نزدیک بود تشنجی ناجی به من دست دهد. اما سرتیب معدب از آن بود که استرابه مرا به بکشد دندان روی جگر گذاشتم آرام نشستم سیگار کشیدم لیکو رو قهوه خوردم و به آنچه رئیس شهربانی میگفت گوش میدادم. دادم. ما ازش در میآوریم علاوه دیگر چیزی از او نمیخواهیم فقط باید به ما بگوید که این نامه هایی که از پاریسا به بهلم برای او میرسد از کیست آن وقت دیگر کاری به او نداریم. پرسیدم زجرشم می دهید؟ گفت مجبوریم و الا از او چیزی در نمیآید. گفتم اگر بمیرد چه گفت تخصیر ما چیست بگوید راحت شود راستش را بخوایی تازام و هم راحت نیست چون که علا حضرت همایونی به اندازه از این قضیه عصبانی هستند که دیگر به هیچ وجه نمی شود خاطر مبارکشان را آسوده کرد پرسیدم می کشیدش. گفت حقش که هست گفتم چه آدم های بدی شما هستید چیزی نگفت از این حرف من خوشش نیامد. من این جمله رو خنده کنان گفتم ولی مثل اینکه لحن ساختگی من خوب حساب در نیامد و حقیقتی که در آن هفته بود سرتیب را رنجاند. موضوعی صحبت را عوض کردیم. از عروس پادشاه بلژیک و افتضایی که سردار اعظم کرمانی در در درآورده بود و اشغال اتریش به دست قوای هیتلر و حریق قورخانه و دوسی در سفارت مصر و مشغله زیادش و اینکه با وجود این علاق است که گاهی مرا ببیند و مطلب دیگری که برای من به اندازه موی باریکی هم جالب و مشغول کننده نبود گفت احساس کرد که جوابهای سرد و پرستکلوف به او میدهم زودتر از معمول بلند شد و رفت موقعی که به رسم خدافزی دست مرا میفشرد گفت به دل نگیرید چیزی نیست خدمت خانم ارز سلام برسانید من همان شب تصمیم خود را در زندگی گرفتم. آقای نازم، شما چه فکر می کنید؟ دیگر حرفی نمی زنید؟ سآلی نمی کنید؟ نظر شما درباره من به اندازه سر سوزنی در جریان زندگی من تأثیر نخواهد داشت. بگویید. هیچ نگویید. من از نگاه وحشت زده شما احساس می کنم که دلتان به حال من می سوزد. من از هیچکس کس مرحمت نکردم. شما پهلوی خودتان میگویید که من وازدم. ترسیدم. شتاب کردم. نفهمیده تصمیم گرفتم. آخ، گفتنش آسان است. اما اگر آن شب شما محرم من بودید و من روح خود را به شما آریان نموده بودم، شما هم دو دل میشدید. و به این آسانی که امروز درباره باره حوادث قضاوت می کنید رأی ثابت و قطعی نمی توانستید داشته باشید. درباره گذشته قضاوت کردن کار آسانی است. اما وقتی خودتان در جریان طوفان می و سیل قرآن زندگی شما را از سخری در دهانم واجه مخوف پرتاب می کند. آنجا اگر توانستید همت بخرش دهید آنجا اگر ایستادگی کردید اگر از خطر ای به خود راه ندادید بله آن وقت در دوران آرامش لذت هستی را میچشید چه خوب است چه آسان است اینجور فکر کردن اما شما خودتان بسنجید آیا از من با آن ای که در زندگی داشتم با آن تزلزل و تشتتی که در هستی من لانه کرده بود با آن بیحالی و سرگردانی، آیا چنین همت بلند از من برمی من دختر پدرم بودم. یک بار که در زندگی به دشواری برخورد، سر فرود آورد. زانو به زمین زد. زمین ادب بوسید و گوشگیری کرد. از من چه توقعی میتوانید داشته باشید؟ استاد هم با همین نظر تحقیر شما به من می نگریست. او هم حتما انتظار دیگری از من داشت این چشم های یک زن حوص رانه هرزه است او هم پهلوی خودش همین فکر شما را گرد گفت به مهز اینکه جانم به خطر افتاد مثل مرغابی در مرداب در لجن پنهان شدم از جوش و قررش دریا فرار کردم اما آخر استاد هم می نبود می توانست در من تأثیر کند چرا خود را در قفس سکوت محبوس می کرد؟ چرا نمی راهی به قلب من باز کند؟ لازم نبود که من حتما زن یا معشوق او باشم آیا نمی توانست مرا برای زندگی سودمندی که وارد آن شده بودم جلب کند؟ برعکس مرا از خود و از آن دنیای پرتلاش راند و به دنیای رجالها فرستاد. چه فایده؟ چرا دارم از خودم دفاع می کنم؟ این دففا نیست همان که اول گفتم قصدن فقط خالی کردن عقده ای است که دارد گلوی مرا می فشارد. روز و ساعت ششیم صبح قبل از اینکه به ادارش برود به سرتیب تلفن کردم و از او خواستم که پیش از رفتن به شهربانی سری به من بزند. پرسید مگر خبر تازه است گفتم شاید برای شما خبر تازه ای باشد گفت میآیم. گفتم خواهش میکنم تشریف بیاورید صبحانه تان را اینجا بخورید. گفت مشغول صرف صبحانه هستم الان میآیم اغلب این را باید شما ادراک کنید اتخاذ تصمیمی به این مهمی در زندگی من کار آسانی نبود کدام زنی است که حاضر باشد به دلخواه تن خودش را بفروشد هیچ چیز شنیتر از این نیست که زنی خود را تسلیم مردی کند که او را دوست ندارد شما مردها این تنفر را هرگز نچشیده اید. آن هم نه برای یک شب یا یک بار، و یا دوبار بلکه برای سالها برای یک عمر آن هم زنی مثل من که سالها لهله مهربانی و نوازش مرد مأشوق را داشته و دور دنیا دنبال آن گشته است زنی که بالاخره پس از گذشت از سنگلاخ هستی تازه به پناهگاه واحد عشقش رسیده است وقتی سرتیب وارد اتاق خصوصی من شد و نگاهش به چشم های اشکبار من افتاد یک خورد پرسی چه خبر است؟ گفتم سرتیب: من از شما خواهش کردم قبل از رفتن به اداره اینجا تشریف بیاورید چون کار فوری با شما داشتم میخواست با تعارف معمولی توی حرف من بدود، گفتم صبر کنید اجازه بفرمایید من ارزم را بکنم آن وقت شما جواب بدهید من از شما خواهشی دارم و خوب می دانم براوردن این تقاضای من برای شما بسیار دشوار است اما یقین دارم که محال نیست در مقابل من هم حاضرم هر تقاضایی که از من داشته باشید انجام بدهم بلند شد و یک اصلی از گوشه اتاق آورد و کنار راحت من گذاشت و روی آن نشست دست مرا را گرفت و میخواست چیزی بگوید اما من نگذاشتم و گفتم سرتی من حرفم تمام نشده است گفت بگذارید من هم یک کلمه حرف بزنم میدانم که شما چه میخواهید؟ نگذاشتم که حرفش را تمام کند نه بگذارید من حرفم را تمام کنم من نمی‌خواهم از شما جواب رد بشنوم وقتی به شما میگویم که هر تقاضایی از من داشته باشید انجام میدهم، این جمله شامل تقاضاهای سابق شما هم هست. من با میل و رغبت می که زن شما بشوم و این را جواب قطعی و بلاشرط من بدانید دستش را که در دستم بود فشار دادم میخواهید باور کنید میخواهید باور نکنید من از این شخص به عنوان مرد و شوهر تنفر داشتم و او هرگز جرأت نکرد تمایل خودش را به زن و شویی با من جز از راه تقاضای ما بروز دهد اما آن موقع که گفتم با میل و رقبت میپذیرم که زنش بشوم از فشار دستش خوشم آمد گفتم من حاضرم و میتوانم زن خوبی برای شما بشوم و آنطوری که شما میخواهید رفاه شما را در زندگی تأمین کنم شما باید استادماکان را نجات بدهید میدانم که خلاصی او تنها در دست شما نیست میدانم که رقبای شما از این گستاخی شما سوء استفاده خواهند کرد میدانم که ال حضرت این اغماز شما را نخواهد بخشید هزار چیز دیگر را که شما فکر می کنید میدانم اینها را به من نگویید از من هم نپرسید که چه علاقهی با به استاد دارم شما کم و بیش میدانید که من با او روابط سیاسی داشتهام اما فقط از این لحاظ تقاصایی به این مهمی از مردی که میخواهم در آتیه با او زندگی کنم ندارم. استاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر است. امروز را در نظر نگیرید که چون مورد خشم و بغز شاه قرار گرفته کسی به او اعتنایی نمی کند. کارهای او مانده فرد فردا هر پرده او جزوگران بهاترین آثاری مملکت خواهد بود اگر او به دست دیکتاتور و به یاری شما کشته شود این ننگ همیشه برای شما خواهد ماند دیگر تمام آرزوهایی که در زندگی دارید بر باد خواهد رفت بعدها لقب شما قاتل و استاد ماکان خواهد بود این مرد میان جوانان و مردان فهمیده ای ایران نفوذ دارد آخر من خودم روزی نقاش بودم و یا عقللم میخواستم هنرمند بشوم و میدانم که کارهای او چه ارزشی دارد؟ شما یک نفر مخالف دولت را دستگیر کردید. اما با مرگ این زندانی استاد فراموش نمی شود. همیشه پشیمان خواهید بود؟ چرا اینطور وحشت زده به من نگاه میکنید؟ شما که ترس و وحشت سرتان نمی شود. بله کار مهم نیست. کار بزرگی است؟ مگر شما همیشه به من نمیگفتید که میخواهید ضربتی به دشمنتان که راه ترقی شما را مسدود کرده وارد آورید؟ الان بهترین فرصت است. استاد در تمام جهان سرشناس است. زندگی خود را جمع جور کنید. خودتان را به ناخوشی بزنید. ثروتتان را آنچه نقد است به خارج منتقل کنید. آنچه می توانید بفروشید بفروشید. استاد را هم مرخص کنید. وسیله فرار او را از ایران فراهم سازید ما هم به اروپا مسافرت می‌کنیم به محض اینکه از ایران خارج شدیم برای شما کار آسانیست است در پاریس در لندن هر کجا که یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل بدهید خبرنگاران دنیا را جمع کنید و بگویید که رئیس کل شهربانی بودید دیکتاتور به شما تکلیف‌های ارجامی کرد که با وظایف انسانی شما جور در نمی‌آمد را که می‌دانید بگویید از اسراری که خبر دارید و پایه حکومت را متزلزل می کند پرده بردارید. از دخالت انگلیس ها در کارهای ایران بگویید. چه وحشتی دارید؟ انگلیس ها هم همیشه آقا و بزرگوار نخواهند بود. از طرف دیگر، مخصوصاً حالا که راه زمامداران هیترری به ایران باز شده است و مسلم خوشایند انگلیسها هم نیست. مسلم خود آنها هم این دلیری شما را به حساب خواهند آورد. برای آنها از ظلم و ستم مأمورین املاک در استان‌های شمال از دزدی و چپاوال دولتی ها از فشار رژیم دیکتاتوری و استبداد شومی که در این کشور برقرار است بگویید با دلایلی که شما در دست دارید نشان بدهید که دستگاه دادگستری ایران جز وسیله اعمال زور و قلدری و چپاوال چیز دیگری نیست اینها را شما بهتر از من میدانید. لازم نیست که من به شما درس بدهم لبخند نزنید من دارم به نفع شما صحبت می کنم. برای آنهای کایت کنید که شما به دستور دیکتاتور استاد نقاش را به اتهام مخالفت با سیاست دولت دستگیر کردید و میخواستید طبق قوانین موجود با او رفتار کنید. اما شاه از شما قتل او را میخواست. بگویید رؤسای شهربانی سلف شما وزیران و رجال دیگر را در زندان مسموم و خفه کرده بودند. و شما چون به این جنایات تندر ندادید ناچار از ایران فرار کردید و اینجا در اروپا وظیفه انسانی خودتان که مبارزه با رژیم و جور و ستم است ادامه خواهید داد این همان ضربتی است که شما آرزو داشتید به او بزنید الان فرصت است مگر شما نمیخواهید در این کشور صاحب جاه و مقام عالی تری باشید هیچ فکرش را میکنید که این اظهارات که با وجود سانسور شدید بالاخره به گوش مردم ایران خواهد رسید در آینده برای شما چقدر منفرد خواهد داشت یک آن تصورش رو بکنید. می دانید که مردم آزادیخواه ایران چه ارزشی برای این دلیری شما قائل خواهند شد؟ نخندید. می دانم به مردم امیدوار نیستید. میدانم که از لغات مردم و آزادی خواهی و جنبش و اراده ملت و مقاومت بیزارید. و اینها را شوخی تلقی میکنید. امروز شاید همینطور است که شما تصور اما همین امروز هم نزایر استادان محسن کمال که هرچه زجرش دادید چیزی نگفت میان این مردم هستند. شما خودتان با احترام درباره جوانانی که در بلدن با آنها آشنا شده بودید برای من صحبت کردید. از آنها در ایران هم هستند و در اروپا مراقب شما خواهند بود. آیا شما می دانید که این بزرگتری سرمایه است که می توانی در آینده برای خود اندوخته کنید؟ خیال نکنید که مردم ایران همیشه گرفتار چنین رخوت و جمودی که الان مشهود است خواهند بود مگر نمی گویید که تا چند سال دیگر جنگ جهانی در میگیرد و کوچکترین سر و صدا این بساط را بر هم میزند بگذارید این سرپوش خفقان برداشته شود آن وقت خواهید دید که در گوشه همین مساجد و مدارس از میان همین وکیلان جیره خار و مستور از میان همین قزاتی که در برابر شما تا کمر خم میشوند خواهید دید که میان همین نافهمها و همین عملها و دهاتیها کسانی هستند که سر و صدا راه میاندازند زیر علم شما سینه میزنند و صادقانه برای تکان این کشور نفرین شده جانبازی میکنند اینها از هم اکنون مراقب شما هستند آن وقت نام نیک برای شما سرمایه است که هیچ کدام از رجال کنونی از آن برخوردار نخواهند بود حتی رجال سابقه داری که اکنون کنج خانه لمیده و دم نمیزنند. و منتظر فرصت هستند حق هم همین است حق هم همین است برای اینکه هیچ کدام از آنها مانند شما جرأت و دلیلی به خرج ندادند و با دیکتاتور در نیافتادند یک <سكت> ساعت با او صحبت کردم خودخواهی او را برانگیختم هر وقت میدوید توی حرف من فرصت حرف زدم به او نمیدادم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 این آخرین ای بود که برای نجات تنها معشوق خود در زندگانی برایم باقی مانده بود. چاره ای نداشتم. من میبایستی او را قانه کنم. یا اگر موفقیت نصیبم نمیشد نمیدانستم چه بکنم. بالاخره به من قول داد که یک راست برود به دربار و آنچه با شاه صحبت کند و بکوشد او را متقاعد سازد که رهایی استاد،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 جالب این است که من خودم هم به حرفهایی که میزدم ایمان نداشتم و آنچه رو که از خداداد یاد گرفته بودم تکرار میکردم. پرسید خب اگر نقشه ما عملی شد و ما چون خبری به روزنامه های دنیا دادیم آن وقت که شاه از استاد بیشتر خواهد شد و یقیناً او را سر به نیز خواهد کرد اول جوابی نداشتم بدهم زیرا حقیقتی در آن نهفته بود. اما برای من از این ستون به آن ستون فرج بود حالا باید او را از ازش رو نابودی نجات داد چه کسی میداند که فردا چه خبر خواهد شد؟ گفتم نه اینطور نیست اگر شما به دنیا اعلان کنید که دستور دادند او را در زندان مسموم کنید و شما به این جنایت تن در ندادید نمی او را بکشند زیرا راستی گفتار شما مسلم می شود از این جهت هم شده استاد در اما خواهد بود. اما چه بهتر اگر میتوانستید او را از زندان فرار بدهید هرچه کردم زیر بار فرار او نرفت حتی مرخصی او را صلاح نمی‌دانست یقین داشت که جلب سوء زن خواهد کرد مخصوصا با گزارشی که سابقا درباره ملاقات او با مخالفین رژیم دیکتاتوری در بلند شاه داده بودند مرخص کردن استاد غیر ممکن بود فقط موافق بود که او را به یکی از شهرهای خراسان بفرستد و به همین قصد از پیش من یک راست به دربار رفت قرار ما این که در خانه منتظر باشم و هر وقت به شرقبانی برگشت از آنجا به من تلفن کند و من به دفترش بروم و از نتیجه حاصل کنم هنگام خداحافظی دست مرا بوسید میخواست لبهای مرا ببوسد اما من صورتم را چرخاندم و او توانست فقط گونه راستم را ببوسد نتیجه این شد که او را با یک صاحب منصب و دو مهمور اداره سیاسی به کلات تبعید کردند دیگر از او خبری ندارم.